شریعت کیسود ماد جلد دوم فصل پنجم گاکو جهان بودن اعتقادی جزم در نزد پیروان مکاتب اسرار معتبر است ایشان ادعا می کنند که حسی حقیقی در زمین وجود ندارد و همان گونه که انسان از مرتبت نبات و حیوان گدر می نماید ای ازیم از وجودهایی کامل نیز در اقیانوس هستی مسکن دارند که از مرتبت آگاهی انسانی گذشتند هرچند که درجه از حقیقت در این گفتار نخفته است اما کسانی که خارج از حلقه اکنکار بدان اعتقاد دارند تعالیم غلط را جسته و گوش به معلمین دروغین سپردند در قلب جهان بودن این وجودها و اساتید زندگی می کنند اما این وضعیتی از است که اندک اندکان را فهمیده و درک می کنند این وجودها همانا اساتید وایراگی هستند در مکتوبات اکنکار تحت عنوان اساتید اک به ایشان اشاره شده است این خوبان اساتید معنوی هستند. موجودیت دیگری ندارند استعمال کلمه کامل در مورد آنها نسبی است. این واژه وقتی در چرخ ذهن بیفتد دوچار دوگانگی شده و مقایسه را پیش میکشد اما وضعیتی که تحت عنوان گاکو از آن یاد می شود، همان کیفیت کمال مطلق بوده و در آتما جهان روح مشتعل است آنجا که منزلگاه اکثریت اساسید اک می باشد. ثابت شده است که با احراز مقام استادی در اک بر روح مقرر می شود که گاکو را انتهایی نیست و دامنه آن ناظر بر مراحل بالای رشد معنوی و حتی بسی فراتر از آن است یکی از سه حقیقت اک این است که روح جاودانه است و به طبع ماهیتی است که رشد و شکوهش محدودیتی ندارد. بنابراین از آن زمان که گاکو از جیوار سوگماد متعال سفر طولانی خود را به درون اقلیم ماده آغاز می کند، ابتدا وارد قلمرو آنسری شده و با گذر از آن وارد بر مادتهای معدنیات می شود. در قلمرو معدنی آگاهیش در مواد سخت. حبس می گردد. با وجود آن که از دید چشمان غیر مسلح به نظر می آید زندگی ابدی در آن جاری است خرشید آگاهی به تمامی صور حیات از یک دانه شن تا کل عالم وجود روح می‌بخشد. از این منزل به آگاهی نباتات حلول می نماید. جایی که آگاهیش در حالت نیمه خواب و بیدار و بیشتر به آن دسته از محرک بیرونی نظیر نور آفتاب و باران که طبیعت از سر طرحان به او اعطا کرده است پاسخ می دهد سپس در وضعیت حیوانی بیدار شده و حالا می تواند از محیط پیرامون و همجواری هایش حوشیاری ها نماید مخالف وضعیات پیشین که قالب هایی ساکن و ایستا بودند حیوانات را قابلیت حرکت بوده و پیامد آن نسبت به مکانهای مختلف آگاهی میابند زمانی که آگاهی حیوان به تبار انسانی تبدل میابد آگاهیش به شدت صعود می و فضیت را تجربه می‌کند. و شاهدش این گفته باستانی است انسان میداند که میداند لیک حیوان فقط میداند قطعا در گونه‌های مختلف آدمی نیز منشور آگاهی از انسان بدوی بیشهنشین تا دانشمند، هنرمند یا فیلسوف متغیر است از ایات ما قبل مرتبه انسانی در سیوه تکامل خود توسط دسته از صاحب منصبان نیک پی معنوی هدایت می شوند. اما انسان با تولد خداگاهی یا مناگاهی شریان تکاملی فیش را به مدد استاد حق در غیل حیات شکل می دهد بنابراین شکوفایی آدمی با جستجوی مجدد اقلیم معنوی میسر می شود او نسبت به ابروجودهایی مثل اتاسید اک آگاهی می بود. اما آنها که و چه هستند از آنجایی که عدد قابل توجهی از ایشان هنوز کالبد فیزیکی دارند از نقطه نظر انسانی اشخاصی با شخصیت استثنائی علم می‌شوند. می شوند و سایر اساتید اک همه و همه به درجه بالایی از آگاهی نائل شده‌اند که ماوراء درک زمینیان است و به همین علت است که متفاوت و خارقلاده به نظر می رسند اک به همراه سایر مقامات گرانمایه معنوی حلقه سری و درونی را تشکیل می دهند. آنها در اکنکار به اساتید وایراغی مشهورند وجود ایشان بر عرفا و پیروان مکاتب اسرار در تمامی اعثار ثابت شده است آنها خدامردان مردان نوشتجات مقدسه قرب یا همان قدیسین می باشند نظامهای مشرق زمین از دیرباز اساتید اک و دانش شگرف ایشان را شناسایی کردند و حسیت ایشان را کاملا باور دارند صفات این اساتید به مانند جریان اک کمال محض یا آن است که آن به عنوان سودماد یاد می شود این کمال به معنای بیعیب و نقص بودن کالبد فیزیکی نیست بلکه در جوهره آتما یا روح قابل ادراک است. کالبد انسانی استاد با عمل کرد و تدبیر صحیح او در صحت و سلامت باقی میماند و تا هر زمان که لازم باشد در این جهان خاکی حضور خواهد داشت. حتی اگر لازم باشد صدها سال عمر میکند. به لحاظ معنوی استاد حق در قید حیات در طول شبان روز در وضعیت خداشناسی است او تمامی قدرتهای سیدی را در کف دارد اما هیچ کدام برایش مقصود نیستند بلکه به واسطه سقل بالای منعیش در توسعه یافتند. از دید انسانهای عادی اینها اعمالی موجز آسا می باشند اما استاد فقط در مواقع ضرورت از چون این قدرت استفاده می کنند. ولی حتی بعید است که چون این عملی را مرتکب شود زیرا پیروانش از درک حکمت آن هستند. تمامی اساتید اک عموما در خفا و در مکان‌های غیر قابل دسترس زندگی می کنند و به خصوص در کشورهای غربی کوشش می‌کنند تا هویتشان به هیچ عنوان فاش نگردد. حضور آنها کیهانی است اینان در هند، تبت، مصر، چین، لبنان، قبرس، مجارستان و همه ملل جهان حاضرند علیکنترها یک ماهان تا استاد حق در غیر حیات وجود دارد که تا انقضاء سمت معنویش وظیفه تصدی بر همگان را عهدهدار است سپس نفر بعدی که جانشین او میگردد اینان کار را در دست گرفته و بار مسئولیت بزرگی را تقبل میکند. این اصلافی در هر یک از طبقات و طیارات کهانهای خداوند حضور دارند وزیفه ایشان کمک به اتقاع بشریت و یافتن رهروان مستعد و آموزش با آنهاست آنان واقع بر این واقعیتند هستند که رهبران زیادی به سوی استاد حق در قید حیات می آیند تا ایشان را زیر بال و پر خود بگیرد و فضائر عشق و خرد را در این جهان بر آنان بیفشاند ولی هیچ کس نمی تواند به اجبار انسان را وادار به تعقیب این گوهرهای خدایی نماید بلکه فقط قادر است او را راهنمایی کرده و برنگیزاند همگان می بایستی شخصاً پای در طریق اکگو دارند هران کس که به ماهانتا گوش نستفارد و جذب دانش خدایی نگردد حقیقتا نادان است در اکثر اوقات استاد حق در غیر حیات امدن از برای آموزش مشکلاتی از قبیل بیماری افسردگی، خشم و سایر احساسات را ایجاد می کند که در هر چلایی واکنش های متفاوتی را باعث می شود حتی ممکن است که برای شناساندن فروتنی، نجابت و فهماندن ادب و نزاکت به هم نوع تنبیهاتی را نیز برای چلا در نظر بگیرد. اما در همان حال با چلای دیگری به نهایت مهربان و ملایم باشد. رفتار و سلوک او با هر چلایی فردی میباشد نه جمعی. طریق کبر و غرور نیست زیرا هرگاه شخصی به بلوغ معنوی برسد معدل آگاهی بشریت به میزانی ولو اندک ارتقا میابد درست به همان همون که مایه اندک خمیر نان را ور میابرد همین که فرد وارد دایره اک میشود دیگر راه بازگشتی وجود ندارد چلا بایستی آنقدر به حرکتش ادامه دهد تا به ناحیه گاکو جهان بودن برسد همان جبروتی که معوای حقیقی تمامی اساتید وایراگی می باشد به جرأت می گفت که کیمیایی برتر از کتاب شریعت کیسودماد از جانب ایکنکار به جهانیان پیشکش نشده است آن اصاره جرفترین جهانبینی های متون معنوی را در خود دارد این کلمات های منسوخ و مندرس بازیافت شده از های دور نیستند که بی‌زمانش شکوفا گشته و همکنون دیگر مدند بلکه چکیده ی حکمت می‌باشند دکترین اک از طریق زنجیره ناگسسته اساتید اک به زمان حاضر منتقل شده است ایشان به رغم تمامی تحریم‌ها و فشارهایی که بر علیه اکم کار تدبیر شده بود و آن را زنده نگاه داشتند آن فشارهای زیادی را متحمل گشته است به خاطر تأثیر عمیقی که در از باستان بر فریاره زمین به جای نهاد تمامی ادیان اصولی در راه تبدیل آن به آموزش های زیرزمینی یا نابودیش می جنگند که در طرح ایجاد این فشارها دخیل بودند تحمل قانون مكافات می شوند. خیلی پیش از این که ملل غرب متمدن شده و از حالت قبیلهی خارج شوند آموزش های کار در دوره باستان به معدودی از کلتمندان هند و تبت عزبه میشد. آموزش های اولیه بر این بودند که مراقبه اک و تمرینات معنوی نوعی پل ارتباطی ما بین ذهن انسان و نیروهای معنوی اک و به عبارت دیگر میان آگاهی معمول انسانی و آگاهی برتر کیهانی ایجاد می نموید. و این نحو انسان دانشی حقیقی را نسبت به خودش کرد می او به صورت شهودی درک می که سودمان عالم مطلق است و اصاره دانش و کل دانش‌ها همه با یکدیگر پیوستگی دارند با این درک سمبولی متولد می شود که دلالت و روشنگری معنوی دارد. این سمبول در نزد اکیست به عنوان اک شناخته می شود که هم تبنم می شود و همین که در نقش یک مظهر ذهنی ظاهر می شود آن ذهن را از پتاخای جهل تصفیه می نماید و به دین ترتیب انسان توسط اکسیر معنوی اکنکار غرق در اقیانوس معنا می شود در طریقت اکنکار شریعت کسود ماد هدایتگر است که به اکیست جهت می دهد و معالن به خداشناسی، روشنبینی و آزادی می انجامد تا خیش حقیر در خویش برتر مهر نگردد توهم حوییت در هم نمی شکند. مفهوم سیلان بی توقف سوگماد آن هستیت جاودان که معنایش از خود آن و دانش لایتناهی اک در قابل ادراک نخواهد بود با گدر از هویت انسان به خویش الهیش ترفیع می و حکمت ناب اک را جذب می کند. دانش بیرونی برای تازه واردین شاهراه اک این مسافرین طریقت والای زندگی در حد پیش درآمدی مجمل کارایی دارد همین که جوینده عرض می کند که اولین قدم را در راه اکبر دارد دیگر هیچ نیازی به تعالیم دنیاوی یا اسراری این جهان ندارد آنها در نقطه مقابل ذهنگرایان کثیری که با دریافتهای درونی بیگانند قرار میگیرند. ایشان شروع به اندوختن مفاهیم معنوی مینمایند. در این مرحله است که چلا توصل خود را بر ریسمان اک می می‌نهد اما بایستی در قالب ماهانتا استاد حق در قید حیات به اک بیندیشد او باید باور کند که ماهانتا واسطه فیض برای توصل تمامی وجودها به سوی ماده است قدم بعدی آن است که چلا تصمیم میگیرد که احیست شود. در این صورت این امکان به او داده میشود که به تمامی محورهای هوشیاری در راه رسیدن به اکشار، روشنزمیری یا آگاهی برتر کمک کند چلای اک از سه مرحله تحتانی میگودرد تا به اولین پله نردبان اکشار در طبقه آتما یا روح برستد این سه عبارتند از کالوده اسی الی و ذهنی او ناگذیر به دریافت انرژی های روانی خاصی است که گاه و بیگاه در قالب طول موجهایی معین از راه می‌رسند. و عموماً به آنها موج برکت گفته می شود. این موج انرژی میدانی مقناطیسی روانی است که فرایند توسعه معنوی را تحت تأثیر قرار داده و به نحو شایانه توجهی جوینده را در راه اکشار و روشنگری حقیقی یاری میکند این امواج به صورت تلپاتیک از جانب ماهانتا ارسال می شوند استاد حق در قید حیات به هدایت این انرژی به سوی چلاها ها کمک کرده و به همین دلیل این دسته های انرژی منبع نیرویی هستند که موجد اتصال حقیقی به معنا باشند چلا نیازمند یک همبستگی جامع میباشد او بایستی هم با انایت به ماهانتا استاد حق در غیر حیات و هم از طریق نیروی اک به جهان خدایی برسد اجباری ندارد که در طول زندگیش من با ماهانتا ملاقات نماید این برایش امتیازی به حساب نمی آید اما هرچقدر بیشتر پناه خود را در استاد بجوید بیشتر هم مستحق ورود به جهانهای بهشتی می گردد مراقبه های طولانی می توانند باعث خستگی جسمی و ذهنی شده و خابالودگی و احساس سنگین شدن به آورند. برای تنوع همچنین قلبه بر این گونه عوارز به چلا توصیه می شود که خود را در اتاقی قرنطینه نماید یا به محیطهای بازی نظیر باغ مزرعه یا کوهستان برود که در آنها مزاحمتی نبوده و صدای هیچ انسانی به گوش نرسد. به این صورت او کالبد و ذهن خیش را با ریتم روح همکوک می سازد بایستی به خاطر داشته باشیم که اکسیر زندگی بخش هوای تنفس شده اکسیژنی که از طریق عمل ششها جذب جریان خون میگردد نیست بلکه آن است که برای تمامی فعالیت های فیزیکی روانی کالبد و ذهن و همچنین روح در جهانهای پایین ضروری است پلاتوم افکار دشمن اصلی چلا. در حین انجام تمرینات معنوی اک هستند و روست که بیاموزد هر فکری را درست در لحظه شکفتنش از ریشه بخوش کند بعد در که تلاتم دائمی افکار در خلال مراقبه نتیجه پاسخ ذهن به محرک های بیرونی است از تموج هر فکری بایستی ممانعت به عمل آید چرا؟ ناچار است که این روند دائمی افکار سرکش را با تمرین آماده باش ذهنی صد نماید همین که افکار شروع به جوانه زدن می کردند تلاش کند که آنها را با دیشه و تمامی شاخ و برگشان حذف نموده و تمرین معنوی خود را ادامه دهد با طولانی شدن مراقبه ای که کوشش در ممانعت از طلوع افکار را با خود یدک میکشد، کشد نهایتا متوجه می شود که تصاویر فکری را پایانی نیست این شناسایی دشمن است دشمن فرد از کار سرکش است یا آنچه که معمولا نیروی کل نامیده می شود این آگاهی اولین مرحله سکون می باشد که در آن خاموشی ذهن حاصل می آید و پس از آن چلای اک فقط نظاره گر جریان آشفته و بی پایان افکار است گویی بر لب رودخانه نشسته و بر گدر آب نظر می کند اگر اکیست در این نقطه توفیق یابد از استبداد افکار ذهن رهایی یافته و برای امور بالاتری که در مسیر اکنکار پیش رو دارد مهیا می شود همین که ذهن از طریق سفر روح حتی برای لحظه ای به وضعیت فراغت رسیده و بالاتر از وضعیت همیشگیش قرار میگیرد آغاز به فهم طلوع و غروب افکار می او درک میکند که اندیشه ها همیشه برمیخیزند ولیکن افزایش یا کاهش نمیابند بلکه آنن متولد میشوند فقط و فقط اک واقعیت الهی توانایی ممانعت از خلق کار را دارن اکیش بر فراز مدار زمان سعود می کنن مکانیسم روند فکری در همین رگ زمان نهفته است. او تلاشی برای ترقف این فرایند انجام نمی دهد بلکه آن را پشت سر می گدارد او قصد ندارد که تصاویر و نظریاتی که ظاهر می شوند را تغییر دهد و عملا نسبت به افکارش بیتعصب می شود نه انرژی خود را صرف توقف آن کند و نه تحت تأثیرش قرار می عملکرد او از طبقه روح تنجامین مرتبه الهی ات می و مطلقا ارتباطی به آرا و یا مکانیسم ذهن ندارد او فقط علاقه من به فعل و است که از روح جاری می شود یعنی از نیروی خلاقهی که از جانب عشق به او عرض می اطاعت می کنن نگاه داشتن ذهن در جایگاه واقعی خودش بالاترین خیش انزباطی برای او می از آن پس تنها دلمشخولی او سفر روح در جهانهای برتر خداوند می باشد افکار می تحت کنترل آگاهی در آید. درست به مانند چوبانی که بر مراقبت از گلش همت می گمارد حالاش جهت انصداد جریان افکار کنترل یا حتی عدم کنترل آنها مسلما باعث خلق و رشد افکار دیگری خواهد شد همند محدودیت ها تداوم روند فکری را طلب می کند ولیکن بایستی این کمند را گسرد فرد بایستی همانند کودکی که با علاقه به یک اسباب بازی نگاه می کند ذهن را متعادل نگه دارد اکیس می که ذهن چیزی بیش از یک ماشین نیست ذهن به مسابه تفریست که گاه و بیگاه آزرده گشته و نیازمند توجه آنی می باشد و اگر به بی توجه نشود درد سر درست می کند کل چیزی که فرد بایستی بیاموزد به دست گرفتن ذهن است. ذهنی که بایستی به چشم یک کودک خردسال نگریست چون این نظارتی بر ذهن مرارت کمتری در خواهد داشت. ذهن فردی اتمی از ذهن کیهانی یا قدرت کن می میباشد. آن نیرویی است که بر جهان‌های پایین حکومت میکند. در حقیقت قدرتی روانی است و نباید آن را چیزی بیش از یک نیروی تحتانی به حساب او ولوست بسیاری از مذاهب این نیرو را به عنوان روح حقیقی مورد پرستش قرار داده و از آن جایی که ساز و برگ زیادی به جهت تداوم حیات در کره زمین لازم است پیروانشان همیشه اسید این دغدغه هست که آیا در حال عبادت پدیده های مادی هستند یا واقعا خداوند را مورد پرستش قرار می دهند این اعمال صرفا تفکین مادی را به همراه دارد و اکیستی که در طلب حقیقت سوگماده است بایستی از آن اجتناب برزن اکیست برای فراگیری خیش تحلیلی یا آگاهی از نیروهای معنوی خدا بی نیاز از مطالعات بیرونی می باشد. او دانش را در جهانهای فراتر از واقعیت زندگی می و معمولا در این امر موفق می شود. ذهن تجارب خود را بر مبنای جهان بیرون عرضیابی می زیرا چیزی از زندگی معنوی نیا است به بازارتار در این رابطه چونین می گوید من هرگز برای علوم تئوری که در کتابها نگاشته شدند ارزشی قائل نیستم زیرا سمره آنها اقتشاش ذهنی بوده و چنین رهاوردی ابداً همسو با تمرینات معنوی اک که معرفت حقیقی را بر می آورند نمی باشد. در مسیر اک مشکلات زندگی تماما بایستی برکاتی معنوی قدم داد شدند. این اصل میگوید که تمامی تنگناها و مطاقب پرشبانه زندگی معنوی هستند مثل مسافری که شد هنگام در جادهی سفر می کند و ماری را می‌بیند، بحشت کرده و می تا آن را وقتی بر خود مسلط شده و فندکش را روشن می کند. متوجه می شود که آن رشته ای از تناب می باشد. او تناب را به دور کمرش می و جامعهش را با آن محکم میبندد. او راهی پیدا می کند تا از چیزی که ممکن بود مانع از سفرش شود نهایت استفاده را ببرد. بیخبری از دانش خداوندی نیز باعث واهمه از چیزهایی می شود که اصلا قدرت آسیب زدن به انسان را ندارند اما به رغم تمامی اینها انسان می تواند با استفاده از قدرت اک و با کمک چیزهایی که در بندگیش شر یا احریمند و در راستای اهداف معنیش بازدارنده می باشند رها گردد او می تواند حالت بیترفانه عدم وابستگی را نسبست به جمله ها کالبد و ذهن کسب نمایند. این کیفیت حاصل استقرار در وضعیت ایستای آگاهی است. همین اینکه او قدم به درون این وضعیت می‌نهد، دل و ذهنش یک ارتعاش ریتمیک و هماهنگ با تکش‌های نیروی اک به خود می‌گیرند. نیرویی که قماش اصلی کیهان‌ها بوده و تمامی مخلوقات. در عرض آن قرار میگیرند تابد اینجا چلا بر روی ماده اولیه خلق کننده جهان پایین به تعمق نشسته است حالا او والد جهان آسمان می‌شود. میشود که کیهان غیر مخلوق خداوند بوده و کاملا متفاوت از جهان پایین میباشند در اینجا قوانین معنوی تغییر میکنند دیدار در آن جهان‌ها روند خلقت عبارت از تپش‌هایی است که روح فردی شخصاً آن را انجام می‌دهد. اگر قرار است که در دایره معنویت حقیقی رشد کند، بایستی در آنجا بماند. این خیلی مهم است که روح تشخیص دهد که تولد، مرگ و زمان وجود ندارند. گوشیاری نسبت به وجوه مختلف زندگی مادی موجودیتی فانی است زیرا زودتر از اینکه تولد یابند میمیرند و نمیتوانند تثبیت شده و یا اینکه در لحظه باشند در حقیقت لحظه حال همیشه در گذشته مهو میشود طوری که نمیتوان آن را از گذشته و آینده تفکیک نمود این دیدگاه به اکیس میاموزد که گذشته حال و آینده واحدی یک چه بوده و تقسیم بندی مادی زمان خطاست اون سال زمان همانند سایر پدیده ها و موضوعات مادی تبه هم می باشد دریافت‌های ذهن شرطی شده فقط جنبه مادی دارند این برداشت‌ها برای کسی واقعیت دارد که مفهوم ذات والای سودماد از ذهنش جایی نگرفتند اینها برداشتهایی هستند که به واسطه رؤیاها ها و پندارهای نادرستی که از روی حقیقت شبیه سازی شده اند شکل میگیرند مستحیل شدن در جهانهای خداوند زوندی معنوی و مبتنی بر تمرینات معنوی اکمکار میباشد هدف از این تمرینات آن است که اکیست را چه از حیث ذهنی و چه از حیث معنوی مدد دهد تا بیخیشی مطلق را در وضعیت اکشار جهانهای بهشتی تجربه کند. وضعیتی که همواره اشتیاق آن را در سر دارد در این حالت او نور و صوت بهشتی فیزماد را میشنود و میبیند اینها جنبه‌های جنبه های دو هستند که هر جوینده ای در مسیر اک آنها را تجربه می کند در شروط که در انجام تمرینات معنوی اک سعی و پشتکار به دهد همچنین در اینجاست که او به برکت روشنزمیری کامل یا وضعیت کامل حقیقی نائل گشته و ماورای غم و اندوه ناکامی و تمامی احساسات نیروی کل به پرواز در می آید. اما تمامی آموخته های دنیاویش جعلی می باشند و خردش آتنده از اشتغالات نفتانی است به همین دلیل اکیست از آن به عنوان آبیدیا دوری از حقیقت یا فقدان روشن نام می برند. این وضعیتی است که در آن انباشت جاهلانه به صورت کابوس های تبالوده متجلی می شوند چون این وضعیتی حیثیت آگاهی نسبت به راه اک حریقت بیداری و شریان آزادی را ندارد جوینده اکشال می‌بایستی که خودش قانون فیشتن باشد او مکلف است که به تنهایی و نه در معیت استاد حق در قید حیات پای در طریق اکنه هست هر کس میباید که از پراک معنوی خودش تغذیه نماید و همان گونه که ماهان تا استاد حق در غیر حیات آموزش میدهد هر فردی باید که نور خود، صوت خود و تکیهگاه خودش باشد. خداشناسی با وکالت به استاد حق حاصل نمیشود بلکه توسط خود اکیس به دست می‌آید. آید به فراسوی رنج و ناکامی هدف تمامی اکیست ها میباشد سنگلاس جهانهای مادی و طبقات مادی معنوی با رسیدن به وضعیت خودشناسی پایان می‌گیرد و روح با رسیدن به طبقه آتما یا جهان روح از خودش باخبر خبر آگاهی اکشار مهمانسرای معنوی در شاهراه عبدیت است. اما همین که فرد حلقه معرفت حقیقی تحت عنوان گاکو جهان بودن روح یا روشن زمینی تام از آن نامبرده می شود را بیابد، دیگر هیچ خست جدا کننده ای ما بین جهانهای های مادی معنوی و طبقه روح نمیبیند. او در هر دو وضعیت زندگی میکند و برایش وضعیت پایداری یا ثابتی وجود ندارد. اگر گاکو را کشتیتی پایدار و سرشار در نظر بگیریم، پس باید گفت که همانند بهشت هشت مذاهب اصولی نقطه پایان رشد معنوی بوده و هیچ تکاملی ما بعد آن قابل تصور نمی باشد سه خطا در حین تمرینات معنوی حادث می که عبارتن درد اشتیاق مفرس برای تجزیه و تحلیل روند فکری تلاش مزید برای بطلان این آناندیزهای ذهنی تمایل بیش از اندازه برای خاموش کردن ذهن زمانی که شور و شوق پزونی یافته و به تمرینات خو میگیرد یکی یا شاید هم هر این چالش ها بر او آرز شده و از پیشرفت او جلوگیری میکنند برخی از اکیست هایی که دوچار این پندار ساده یعنی خاموشی ذهنشان آن هم بدون محافظت ماهانتا استاد حق در غیل حیات می شوند هم برای رسیدن به محابره این خاموشی ظاهری نمی کنند غالبا در این توهم سیر می کنند که به خدا شناسی رسیدند به همین دلیل است که ماهانتا علاوه بر این که آموزش های اکنکار را تفسیر می وظیفه دارد این اصل را بدقل قلب چلاحک نماید که احتمال به دام در مسیر اک بسیار زیاد است فقط ان گمراهی های فریبنده حواست فرد تا قبل از مرتبه خداشناسی در حین تمرینات معنوی اجتناب است یکی دیگر از مخاطراتی که در مقاطع معنوی خاص و مخصوصاً در منطقه ذهنی کیست را تهدید می کند، از منیت او سرچشمه میگیرد به مثلا تصوراتی از این قبیل که من هرگز به تولد انسانی باز نمی گردم. این آخرین مرتبه است که در زمین زندگی می‌کنم. من در اکشار به سر می بردم. من برای همیشه تجربیات مادی را ترک میگویم. من به مقصد رسیدم. این چونین نیست تنها زمانی که تمامی اجزای خیش آگاه ریشه کن شده و فرد از سمیم قلب نعدوستی را خواستار باشد و چراغ منیت خود را در پیش آفتاب ابدی خاموش کند قادر خواهد بود در هماهنگی با آزادی اکشار گام زند این بیتیشی همه چیز را در هم می شکند و دیگر منی باقی نمی ماند. این هدف اصلی تمامی پیروان طریق اک می باشد به این وضعیه ای از خودشناسی گفته می شود از آگاهی که منجر به دانش خیشتن و پیامدش تجربه ماهیت اصلیل روح می شود. روح از اینکه کیست و رسالتش چیست آگاه می گردن. رسالت او همانا خداشناسی و مسئولیتی است که در جهت خدمت در دهان خدایی خداایی بر می البته محظوریتی برای روح وجود دارد او مجاز نیست بگوید چه وظیفهی را جهت انجام رسالت و مسئولیتهای معنویاش در پهنه ابدیت برگزیده است جهانهای عت برای کسانی که از آنها اطلاعی ندارند اسرارآمیز جلوه کند اما مادامی که در معیت ماهانتا استاد حق در غیر حیات و در خلال سفر به طبقات گوناگون و در غالب آتما فروف کشم شوند بسیار ساده می شوند. آنها به ترتیب عبارتند از یک در شمارش ایستگاه های شاهراه اقیانوس اشق رحمت منزلگاه سودماد طبقه فیزیکی اولین آنهاست. در این طبقه است که روح توسط نفسانیت های پنجگانه خود ستایی، تمع، خشم، وابستگی و, و شهوت به دام می‌افتند. اینجا طبقه توهم زمان، مکان و ماده است. همان ناهیه واقعیت مایا و علوم مادی که زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. صوت این طبقه صدای رعد و برق است. ذکر آن آلای و نام کلاسیک آن اعلام می باشد در زبان هندو به آن پیندا میگویند دو دومین طبقه جهان اصیری یا جهان احساسات و عواطف است انعکات اصیری و علوم اسراری اشباه بشقاب پرنده ها جن و پری و غیره همه از این مرتبه نشعت کرده توت آن صدای قدرش امواج دریا و کلمش کالا و نام کلاسیک آن تات آندا می باشد در زبان هندو به آن تیر گفته می شود 3 سه, سه و می طبق جهان علی می باشد ذکر آن مانا بوده و پروردگار آن ماها کلبراحم کل نیرنجان است حاکم مطلقی واقعیت منتیز و تمامی اشکال تحتانی می باشن. خاطرات الگوها و پیشینه های کارمیک در این طبقه ذخیره میشوند این در اینجا کسانی که قراعت آتاشیک انجام میدهند برای کشف منشه مشکلاتشان در زندگی های پیشین و رفع آنها به دانجا سفر می کنند در این طبقه شخص ترین زنگوله را میشنود. چهار، چهارمین طبقه طبقه ذهنی و ذکران آم است. در آنجا صدای جریان آب به گوش آید اینجا طبقه قدرت ذهن کیهانی و خدای جهان ودانتا، بودیسم و هندویسم یعنی برهمانه بزرگ در آن به میبرد. در نوشتجات مقدس هندو از او سخن بسیار سفته است این طبقه منشه آموزش های اخلاقیات فلسفه هنر خدایان مرسوم و ادیان می باشند جهان ذهنی طبقه اتریست که به آن ناخداگاه می‌گویند. چرا که مجرایی پاکتر برای جویندگان طریق خدایی می روانشناسان به آن نیمه آگاه میگویند آنجا مبدع از کار بدویست و خط است که بین کالود ذهنی و کالود روح یا آتما سروپ کشیده شده است زکران با جو و صوت آن وزوز زنبور است هر آن ساگونا براه می باشد پنج حال به پنجمین طبقه یعنی طبقه روح می رفیم که مرز جدا کننده جهانهای بالا و پایین بوده و به عبارتی نواحی روانی را از طبقات معنوی تفکیک می نماید اینجا اولین نیستاه روح در جهانهای خدایی است و می‌توان آن را کرانه بهشت نامید در نواحی بالا آزادی و فردیت خود را باز می که به آن خودشناسی گفته می شود و به روح اجازه می دهد که مجددن به وضعیتی وارد شود که به آن خدا آگاهی و یا خداشناسی میگویند. گویند این طبقه سودماد است حاکم آن فاسنام بوده و صوت آن نوت تنهای فلوت می باشد شش ششمین طبقه الاخلوک یا طبقه نامرئی است لوک در زبان هندو به معنای طبقه است اینجا دومین مرتبه از جهانهای حقیقی خدا است. ذکر آن شانتی می باشد و صوتش زوزه شدید باد است خدای آن الاخ خروشا انرژی خلاقی لایتناهی می باشد کسانی که به این طبقه میرسند رسند باید تیکه واقعا از می برای رفتن به پراسوی آن داشته باشند زیرا در اینجا شعف و آرامش وافعی را تجربه می کنند هفتمین طبقه آلا یا جهان بی انتخان می باشد زیرا به نظر میرسد رسد که پایانی ندارد و منطبه سوم از جهانهای حقیقی خداست گاهی اوقات طبقه ساشخاند نیز نامیده می شود جایی که عبدیت آغاز شده و پایانی می پذیرد ذکر آن هوم می باشد و صوت آن همچون نجوایی با لبان بسته و مشابه صدای ازدحام زنبورها و یا جریان الکتریسیته شدید است. لوک نام کلاسیک آن است. هشت هشتمین طبقه هوکی کاکس بوده و بالاترین وضعیتی است که روح میتواند به با آن برسد. ذکر آن آلوک کرد. که به صورت آلوک زمزمه می شود. صوت آن صدای هزاران ویولون است. نو. آداملوک یا طبقه غیر دست دسترس. ویرا ایده قلیلی اگر بتوانند وارد این جهان می شوند. کلمه آن هوک است که به صورت کوتاه و از صحنه خارج عدا می شود. ده ده همین طبقه آن همی و یا جهان بینام هست نمی توان سخنی درباره آن به زبان آورد آن ماورا دایره لغات بشریست کلمه هیو یو نام کیهانی خداوند است که در زبان تمامی اجزا و پدیده های زنده هستی است. آن داخل بر همه جا و همه چیز است. یازده یازده همین طبقه جهان سودماد است. اینجا آغاز منزلگه سودماد می باشد فقط از حق قادرند به این خطه از جهانهای الهی برسند خارج از این جهان کلمه خدا موسیقی با شکوه کیهانها به بیرون است. هران کسی که یک باران را بشنود دیگر میل زندگی در جهانهای مادی را از دست میدهد دوسته سودماد این سودماد است حقیقت جاودان اویانوت اشخ و رحمت ماوراء این طبقه آگاهی اکشار است که تمامی جهانها را پوشش میدهد این طبقه فقط قابل تجربه است هرگز به کلام نیاید و در تفکر نگنجد صوت در اینجا موسیقی خدایی است تمامی رهروان اک به کلام ماهانتا استاد حق در قید حیات ایمان دارند زیرا او خدا مرد و نماینده سودمان در تمامی افلاک حقیقی خداوند است روزارتارز می گوید ایمان، اطمینان قلبی و باورتان به جهان بیرون جاری شود گره های درونی خود را بگو و خیش را بر حقیقت است این همان باور آگاهی درونی و بی‌نظرا است که همواره قالب بیرونی خود را یافته و همچنین آزادی از با اسلاق روانی را توسط صوت مقدس هیو به همراه می‌آورد. در این صوت مانترایی تمامی نیروهای مثبت و سعذ بخش یک جا و تلاش می‌کنند تا بساط محدودیت‌های انسانی را برچیده و زنجیر جهالت را بگسلند آنها به سان پیکانی که بر نقطه این نشانه می رود بر یک متمرکزند چنان چه تعبیر یک تجربه عمیق معنوی بی و به سرعت انجام شود قالبن فرد را قربانی تفکرات خودش می نماید او بدین دلیل که فرد یا مبنایی را برای سنجش موشکافانهی تجربهش در اختیار ندارد نمی فهمد که این تجربه چیست و از عرضش معنری آن در مسیر خدا بیخبر می ماند. او معمولا خواهان بحث در باب کیفیت نور و صوت خدا می باشد در حالی که هنوز شب یلدای منیت را پشت سر نگذاشته است مادامی که به طور ذهنی با این تجربیات برخورد می کند عموما نوعی تئوری الهی با پیچیدگی های گسترده تا میگیرد که در آن کلام خدا بازه بردستی تمام گنجانیده شده است به طوری که دیگر خلاصی از بند آن برای ذهنش غیر ممکن میباشد بنابراین در عوض اتکال و اعتماد به نیروهای درونی خویش انتظار دارد که ماهانتا با واسطه ای خالقلاده به کمک او بشتابد در اثنای اندیشیدن به هدف و همچنین استراتژیها و جهتگیریهایش از آثار واقعی منتج از تمرینات معنوی اک قافل می دلدن. او فراموش می که واقعا راهی هم برون از تمام آلام و پریشان ها وجود دارد خارج از بیمفهومی زندگی و خارج از ملالت و یک نباختی دور از دل سردی و شکست و مبرا از غم و اندوه و مستثنا از ترد او میآموزد که طریقی غیر از این تأثیرات کل و رو به سوی آزادی در زندگی نیز وجود دارد و آن راه است. اک ریشه و هسته حقیقی حیات مذاهب و زندگی روزمره است اصلی است که به واسطه آن تمامیت حیات و کلیت کیهان خداوند روند خود را می کنند آن حقیقت است تا زیبایی؟ اهمیتی ندارد که فرد به چه زبانی تکلم میکند لزومی ندارد به مکان خاصی برود تا تنین اک را لمس کند منتظر زمان خاص یا شخص خاص بشود او در همین لحظه میتواند با اک ارتباط برقرار کند اصلا مهم نیست که چه مذهبی دارد او همیشه در جوار اک است همین حالا و هم اکنون. اک آینه تمام نمای زیبایی های خداست اک جوهره سوگماد است انسان نبایستی خیش را در گیر خود برتر بینی مذهبی نماید بسیاری از اختلافات منجر به جنگ در میان توده ها برخواست مباحثه بر سر تعاریف و تصاویر خداست بیشتر این مشاجرات در بین مردمانی که اصول جرف و جاودان اک را درک نکرده باشند همچنان ادامه خواهد داشت آنها به سخنان معلمان خود و سایر اتاسید والا مقام گوش نفردند اک نیروی زنده است که در کل کیهانهای خداوند کار است آن خامی و خاکم نیروهای بنیادین و خلاقه در تمامی اتمهای زندهی حیات است. نیرویی است که بر همگان و از جمله انسان مسلط است. و اگر با آن رخصت دهد به وی راه خوب زندگی کردن را خواهد آموخت با جدایی و غفلت از اک او در وضعیت کل اقامت میگزیند، وضعیتی که از باب ضعف و زوال آگاهی انسان را فراهم میآور. این جنگی به راه می که آگاهی او را دوشقه می کنند. در درونش آتشی زبانه می کشد که ساعت درونی او را صحنه نورد نیروهای اک و نیروهای کل می نماید. انسان فرزند بازی گوش اک است. اولین و مهمترین وظیفه اکنکار تنظیم و کوک مجدد نوای روح، توسط تعالیم و انضباط‌های می میباشد پس از آنکه فرد به درجه‌ای از اعتماد به نفس می‌رسد دکترین جدید اک با اوستواری بیشتری در او تثبیت می‌گردد زرق و برق و تکنولوژی و اندیشه های متافیزیکی تحلیل رفته و در برابر نام مقدس هیو به خاک میافتند. ذکر هیو میتواند در کنار سایر تمرینات معنوی انجام شود. همان گونه که قبلا نیز اشاره شد، هیو رابطه مستقیم با روند توسعه فردی در اک دارد و به عنوان مکملی فکری متناسب با هر سیستمی، خواه ذهنی و روانی و خواه معنوی، تجربیاتی را به همراه میآورد. بنابراین عجیب نیست که امور اک به جای اعلان عمومی یا نوشته جات به زبان به چلا منتقل می امروزه امروز آزادی از سنتها و افکار فرا رسیده تا اک بر همگان شناخته شود. فقط در اصر حاضر است که امکان نگارش و چاپ آن فراهم آمده است زیرا موانع کمتری از شکنجه و جفا در برابر آن موجود است در همین دور است که انسان هم در هیئت جمعی و هم به طور درونی تا آن حد ترقی کرده است که به درک و معرفت اکنائل گردد. انسان به آن مرتبتی واصل شده است که بیداری ایمان است بیداری از بحر رهایی از مبانع درونی و از بحر تمرکز بر هدف متعالی سمدی یا خودشناسی اما معالن میربی کالپا یا خداشناسی اکیست واقعی هرگز از ماهانتا استاد حق در غید حیات یا یک از پیروان او انتظار اجابت دعاهای خود را نداشته و توقع هم ندارد که در حق به معجزه نماید هران کس که شفا یا هر مقصود به خصوص معنوی را از شخص دیگری خواستار گردد معبولا به تقاضایش پاسخی داده نمی شود کسی که نیازمند مساعدت است بایستی به جای دعا کردن خودش پیش قدم شده و درخواست خود را شخصا به پیشگاه ماهانتا استاد حق در قید حیات ببرد این قانون است توسط به هیچ مرجع دیگری معتبر نیست مگر آنکه شخص مجوز آن را دریافت کرده باشد. اگر شخص برای کمک معنوی به دیگران بی اجازه یا بر اساس فزیاست و پیش‌داوری‌هایش اقدام کند، مستحق تنبیه توسط قانون کبیر است. هر تجربه جدید و موقعیت تازه‌ای در زندگی باعث بست گسترۀ دیدگاه چلاگشته و این پالاتی ظریف را درون او به وجود می آورد این شخصیت هر چلایی که در امور معنوی اک جدی و ثابت قدم است مدام دست خوش تغییر می گردن. این تغییر و تحول هم در برگیرنده شرایط بیرونی زندگی و هم متزمن ادراکات نوین درونی است و در این راه گذر ارکان ذهن بیش از پیش قبی پنجه شده و این خطر وجود دارد که او را به ورطه خود ستایی بکشانند اینکه اسم را پیشرفت رفت بگذاریم یا پس رفت دیگر بستگی به این دارد که از چه زاویه به آن بمگریم اما باید اذعان داشت که این قانون زندگی است که در آن معنویت و روان در هماهنگی با یک دیگر کار کرده و همدیگر را در جهانهای معنوی مادی آنجا که روح زمانش را صرف نیل به کمال میکند تعدیل می کنند. روحیات و تبایه مذهبی و فلسفی ریشهدار مخلوقات فردی نیستند بلکه آنها فقط اولین محرک خود را از اشخاص دریافت کردند آنها از بذر امواج خلاقه حیات می رویند. دوشت این تفکرات چه درست باشد چه غلط مستلزم سرمایه گذاری بلند مدت زمانی است آنها درست همانند درخت یا هر ارگانیسم زنده دیگری بر طبق قانون ذاتی حاکم به خود به حیات ادامه می دهند می توان آن را موضوعات عادی زندگی نامید زیرا از جانب نیروهای کل تغذیه می شوند ظهور، رشد و بلوغ آنها نیازمند زمان است کل به هیچ وجه اجلی ندارد همانطور که یک دانه بالقوه درخت است، ولی برای تبدیل به یک صورت تجلی به زمان نیاز دارد کل نیز به همین روش عمل کرده و مذاهب و فلسفه ها را به این دنیا میآورد تا چشم انسان را بر حقیقت کور نماید آنچه مهانتا استاد حق در قید حیات به صورت کلامی و در الفاظ آموزش میدهد تنها شعاعی مختصر از انوار تابناکی است که با حضور مطلق ایش شخصیت اصیل و هیئت حقیقی خود می افشاند مهانتا کاملا از قصور کلامی و محدودیت لغات و زبان آگاه است اینها او را نگران میکنند زیرا وقتی که های اکر را در قالب کلامی آموزش میدهد در حال ارائه چیزی است که از فرط معنا و ظرافت نمیتواند به واسط منطق صرف و استدلال درک شود اما علارغم تمامی اینها ماهانتا به دور از هر گونه ترحم و دلسوزی افشاگر حقیقت به کفا است که ایدگاهشان از گرد و غبار توهم پاک شده است او از صحبت کردن در مورد اسرار مکتوم حیات یا سایر مسائل مشابهی که در حوزه عقلی انسان نمی گنجند خودداری می کند او تنها به ارائه راه های عملی برای حل مشکلات آدمی در حوزه معنویش بسنده می کند او هموار مفاهیم ضروری را به شکلی که منطبق بر ظرفیت شنوندگانش باشد تدریس می کند آموزش های پیفرفته اک به صورت درونی و بسیار سری ارائه می هدف آنها محرومیت انسان از حصول به معرفت والا یا دانش فراگیر نیست بلکه جهت اجتناب از لفاظی های توخالی و تفکرات است که بدون آن که تلاش کنند تا خیش را از طریق تمرینات معنوی اک بیابند می که این سطوح منور آگاهی را به طور اقلانی و بیهوده مصروف نمایند انتقال تعالیم اکبدین معناست که هر فرد، هر نژاد یا مذهبی و هر کشور یا ملیتی میبایستی به صورت انفرادی بهترین روش یادگیری و برترین راه بیان آن را بیابند تا بتوانند اکرار زنده نگه دارند این یک قیاس فلسفی یا عقیده متافیزیکی نیست بلکه پیش زمینه یک روحیه نوین برای رزم معنوی است که بایستی با چشمان روح یا آنچه که فقدان منیت نام دارد در پیش گرفته شود. با معکوس نمودن دیدگاه فیزیکی به مرتبه کامله روح، به ناگه همه چیز در چشماندازی نوع تبلور می‌یابد. به طوری که جهان درون و بیرون یکی می‌شوند. ولی این بار قائم به وضعیت بالاتری از آگاهی هند. این آگاهی متناسب با درجه توسعه خود حقیقتی بدیع و جهانی خاص را کشف می کند. که همان گاکو جهان بودن است هر اینی که جمله واصلین حقیقی اک در آن مقیم